رخداد، نادرستی نظری های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی. نام خدا باز سلام و بهترام خدمت شنندگانی گرامی همراهان برنامه برابری از صدای امید از سایت اینترنتی www.sidaiaomid.com در خدمت شما هستیم و به همراه جناب اقای ایران گرامی در قسمت 27 ما رسیدیم در قسمت 25 و 26 بحث هایی در مورد انسان های اولیه و تکامل و میخوایم چارچوب نظری که به واسطی اون از رسیم به بحث های مهاجرت های اولی و دلیل این مهاجرت ها انجام بدیم تو برنامه گذشته یک فکتی از تاریخ تمدن ویلدران هم آوردیم که ت این۱16 سال چه اتفاق در مغز انسان میافتی که۲ سال بیش آتش هایی که از به صورت طبیعی در زمین پدیدار می‌شدن و به وجود میوانونه به واسطه طبیعت نوع بشر از اون نمی ترسید. بقیه جانوران میترسیند ولی حدود۱۶ ه سال بعد چین چه هزار این بشر. آتش رو به وجود میاره خود انگیخته و بسید آقلانه میپذیره به عنوان یک پدیده طبیعی و استفاده برای نور و همچنین گرما و روشنایی این توی سده هزار سال چه اتفاق میفته برای این مغز چه اتفاق میفته آیا اصلا این مغز انقدر در این فاصله بسیار کم که برای سده هزار سال بسیار فاصله کمیه بسیار برای تاریخ به وجود اومدن یک نجات اصلا یک لحظه است اصلا در حد مثلا یک ثانیه هستش ما نمیتونیم این رو بیزن و, و عرض کردم که برای همین هم تابحال از حضورتون که جواب مشخص و روشن علمی داده نشده ما حالا بیایم به اون مرحله ای که تو قسمت بیست و پنجم بنده ارز کردم از میتوکندریایی که ارز کردم مطالعه دی ان ای افراد نشون میده که همه ما انسان ها از یک مادر مشترک هستیم که تخمیناً 180 هزار سال یا شاید هم 170 هزار سال پیش جایی در شرق آفریقا میزیسته این مادر مشترک همه انسان ها که به اصطلاح هوا میترکندری یا هوا میتوکندری یا حالا بعضیا با کلمه هوا هم در واقع اون رو مطرح میکنند بر اساس ادیان کتب ادیان تاری، ادیان ابراهیمی قلبته چقدر درسته یا چقدر نادرست میتونه بحث دیگه ای باشه که حالا فکر نکنم برسیم تو این برنامه ولی خب تو برنامه‌های آینده قطعاً اینو خواهیم داشت که اون نمادها و سمبل‌هایی که چه تو تمدن‌ها مطرح میشه و چه توی ادیان تاریخی مطرح میشه اینها در واقع استعاره است لزومی نیست حالا بحث ما خواهیم داشت مثلا شما تو شاهنامه یه چیزی دارید مثل جمشید مثلا 700 سال حکومت می‌کنه لزومی ما این شخص نیست که 700 سال حکومت می‌کنه این یه دوره است استعاره از یه دوری تاریخی هستش که اینها رو ما موقعی که فکت میدیم به شاهنامه به عنوان سند اصلی تاریخی ما اون رو توضیح خواهیم داد و جناب ایران مهرم که در واقع تحقیقات واژه‌ی هایی در این ماجرا حتما از نظراتیشون استفاده خواهیم کرد ولی مطالعه کروموزوم وای یا به قول در واقع ایگرک پدری پدری مردان همه بشر نشون میده که همه انسان هم از یک پدر ریشه گرفتن که حدود 140 هزار سال پیش توی آفریقا زندگی می کرده یعنی این اختلاف 40 هزار سال بین مادر اولیه و پدر اولیه اونایی که بود بعضی متقن 180 هزار سال بعضی متقن 170 هزار سال برای مادر اولیه ولی برای پدر اولیه حدود 140 هزار سال پیش و تقریباً به یه قطعیتی رسیدن Uh, اندیشمندان و پژوهشگران و باستانشناسان و همچنین uh, کاشناسان علم ژنتیک که میشه صدر روی هزار سال در واقع به قول آقایون علما اجماع کرد ولی این اختلاف چهل هزار ساله و سی هزار ساله بین پدر, بزر... پدر مشترک و مادر مشترک مادر بزرگ مشترک بشریت و پدر بزرگ مشترک وجود داره حجبت که البته درک این دلیل این اختلاف سی هزار یا چه هزار ساله هم خیلی ساده است. اون مادر اولیه تنها زنی نبوده که زمان خودش میزیسته بلکه بازمانده های سایر زنها منقرض شدند و اونها طی ده هزار سال باقی مانده بازماندهشون باقی نموندن و حتی به همون ترتیب. مردان بسیاری هم میزدن که طی ده, ده هزار سال زاد و ولد کردند ولی از اونها نیز بازمانده باقی نمونده تنها انسانهای های باقی مونده که اکنون در حال آزار یه چیزی حدود 7 میلیارد نفر هستند از نسل باقی مونده در واقع همون پدر و مادر هستند ولی باید توجه داشته باشیم یه چیزی رو که نسل انسانهای مختلفی که تو قاره آفریقا ظاهر شدند و از اونجا مهاجرت کردند به دلایل طبیعی مثل عصر یخ بندان، دورهای خشو خشو زالی رواج بیماری های خیلی واگیردار و گسترش این بیماری های عجیب و غریبی که در تاریخ بشریت هم بوده به شدت تو خطر بودند. موقعی که حتی ما میبینیم که تو مقاطع تاریخی تحول تاریخ تحول در واقع انسان ها و نوع بشر، انسان‌های زنده در سطح کره زمین به چند هزار نفر حتی بعضی وقتا کاهش پیدا کرده و به همین دلیله که موجب شگفتی نیستش که خط نژاد انسانی وقتی که به عقب برمیگردیم خیلی نازکه بعد مثلا تو این مثلا 500 سال گذشته از که خط نژادی بزرگتره درشت‌تر کلفت‌تر ولی اون خط نژادی که و قبل خیلی خط نژادیه نازکی هست جمعیت کمی بله جمعی... حتی برخی ها که یه مدت زیاد میشه بعد مدت تا چند هزار تا هم از گونه انسان امروزین ما اه... کمتر باقی نمیمونه بخاطر از کردن بلایه های مختلف اصری اخمنده خوش سالی های که در این دوره های مختلفی اخ... رخ داده و بیماری که اه... نوع بشر میگیره و بعضا تا حتی م شمارش نیست مرز نابودی به اون جمعیتیه که امکان زاد و ولد داره. تناسل و زاد و ولد رو هم بلد. فراهم کنه بلد. اگه فراهم نشه دیگه اون منقرض میشه منقرز میشه بله از در توضیحتون بعد وقتی که در واقع عرض کنم خط نجات انسانی وقتی که عقب میگردیم خیلی نازک و در واقع همه از یک پدر و از یک مادر مشترک هستیم با همون تفصیل که گفته شد این انسان های اولیه در قاره آفریقا, آفریقا بودند و, و قادر به شکار و, و همچنین گردآوری میوه هم بودند مشغول بودن تا اینکه زمان های خشکسالی طولانی سبب میشه که حیوانات قابل شکار به طرف مناطق سرسبزتر مهاجرت کنند لذا اینجا ما میرسیم که اولین مهاجرت ها به دلایل شکار هستش که به وجود میاد اون خشکسای های اولیه هستش که دلیل شکلگیری اولین مهاجرت ها از همون قاره آفریقا که اجداد اولیه ما پدر بزرگرگها و مادر بزرگهای های اولیه ما اونجا زندگی می میشه این انسان های اولیه هم به دنبال اونها مهاجرت رو در پیش می گره. دنبال اونها را میفتن دنبال این جانورانی که در واقع شکار انسان ها بودن، تغذیه انسان ها از اونها بود، و هنوز کشاورزی که به وجود نیمده بود، از کشاورزی که نمیکرد از همون طبیعت در واقع تغذیه می کرد. از میوه طبیعت، از اون گیاهانی که توی طبیعت بود، ارتزاقی و بیزافیه، برخی حیوانات بود که اونها رو شکار میکردن تا اینکه تغذیه بکنن اولین دنچادی که از آفریقا به بیرون مهاجرت کرده و آثار اونها تو سایر مناطق جهان بجز آفریقا یافت میشه و انسانها دوچار جهش جنتیکی محسوب میشه انسان ناندرتال و انسان دنیسوان هست که آخرین بقایای اولی حدود 30000 سال پیش آخرین هاشون یعنی آخرین نسل‌هاشون که قبل از انقراض حدود 30000 سال پیش رو بوده و با منقرض و دومی هم یعنی انسان دنیسوان در آسیای شرقی بوده و منقرض پیدا میکنه یافتن آثار این گونه انسان‌های اولی در واقع خیلی جدید هستش و ما تو پژوهش‌های قبلی در مورد تکامل انسان ما چیزی از اینها نمی‌دونستیم. پس از این دو گونه اجداد انسان‌های امروزی یا انسان هوساپیان نسل بزرگ مهاجر از آفریقا رو تشکیل بده، طی چند هزار سال مناطق جهان از جمله آسیا، اروپا و حتی آمریکا و استرالیا رو پر میکنند این ها حدود 60 هزار سال یعنی از حدود 140 هزار سال تا 80 هزار سال پیش مهاجرت خودشون رو از آفریقا شروع می‌کنند. نقشه حرکت این نوع ها که در واقع بر مبنای مطالعات و مقایسه ژنتیکی هستش نشون می‌ده که محل ظهور انسان ها در شرق آفریقا و مشخصاً در کنیا بوده. اون کشور کنیا رو به عنوان اولی حتی خیلی فکر می‌کنن که این نیای اولیه حداقل میتوکندریاییه. یا مادر اولیه تو همین کنیا زندگی بیکرد در مورد پدر اولیه اختلاف هستش حالا بسیاری معتقدن که تو کنیا بوده ولی مادر اولیه و قطعی هستش تقریبا بین اندشمنده بجاز چند نفر معتقدن که محل زندگیش توی کنیا بوده ولی مشخص میشه که مسیر مهاجرت های عمده هم از همین منطقه بوده بجاز مهاجرت‌های درون آفریقا که در واقع بقیه این انسان‌های مهاجر میان از منطقه خاورمیانه میان عبور می‌کنند که از منطقه‌ای که ما توش زندگی میکنیم ایران و کشورهای عربی و اینها دلیل این همرا هم این بوده که این منطقه از لحاظ تنوع میوه‌ها و دانه های خوراکی و حیوانات قابل شکار و اهلی کردن در زمان پایان عصر یخبندان بینظیر بوده. یعنی برای اون انسانی که تو آفریقا شک گرفته بود و دچار خوش‌صالی شده بود این منطقه تا براش به هشت محصوب می شده. مناطقی بکر بودن، میوه ها و دانه های مختلفی بود، گیاهانی بودن که بک بهش دست داده نشده بود، از لحاظ آب و هوایی بسیار مناسب بودن. و به اضافه که حیوانات و در واقع اون چیزی که برای میخند شکار بکنن، و ازشون ارتزاق بکنن و تغذیه بکنن، اون هم توی اون منطقه، توی اون منطقه خاورمیانه از همه بیشتر براشون فراهم بوده. لذا اجاره رو انتخاب میکنن یه منطقه ای هستش که پر آب در واقع پر آب هست رودخونه های خیلی پرآبی توش هست سرسبز پر نعمته و به همین دلیلی که اون انسان های اولی همراه با حیوانات قابل کار که به دنبال چراگاه و منطقه مساعد زیست بودن به این سرزمین مهاجرت کرده و از اونجا به تدریج به سایر نقاط جهان پراکنده میشه سرایه می یعنی پس اولی مهاجرت ها به سمت شرق بوده خاورمیانه میانه بوده ایران امروزی بوده بعد از اونجا پخش میشن به تمام دنیا از اف... اولی از افریقا میان خیلی طول میکشه ده ها هزار سال طول میکشه تو این فلات ایران تو این منطقه خاورمیانه میانه جاهای پر آب بین نهره روده دجله و فرات و روده جیهون روده رود سیهون تو این مناطق تو این ای که بعدها خواهیم گفت هلال این کشاورزی میگن به این منطقه تو این منطقه مشخص میان و از اینجا در واقع مهاجرت میکنه و پخش میشن به, سرا... پخش میشن به سراسر عالم تقریبا اجداد حدود نود درصد از مردم امروز جهان روزگاری از ایران و مناطق همسایی های اون گذشتن این تقریبا ثابت شده است نگی نایی خب چرا نگی؟ نا خب میگیرم؟ اشکال نداره باید از یه جای شروع کردیم بحثا بعد از یه جای شروع کرد شما جای خطرناکی هم هستین تو دانشگاه هستین <laughs> اشکالی نداره حالا حالا ما تو خیابون نخرش با مردم عادی سر کار چیزی تو خوبی اشاره کردین حالا چه ایرادی داره من نمیدونم چه مرضی هست چه چیزی هست که حتما باید ببینید متأسفانه توی پژوهش ها و تقاوات دانشگاهی هم هستش مثلا هر پایان نامهی که آخرش منابع و مآخذش بیشتر از همه مثلا منابع مآخذ لاتین و انگلیسی داشته باشه کلاسش بیشتره خیلی واقعا چیز بدی هست ما واقعا این از این که ریبون میگم از اساتید واقعا میخوام که از این چیز پایان بدنه که چی, چی مثلا مثلا میان اولین نگاه اصلا نگاه به محتوا نمی کنه اون چیزی که تولید میشه اون متنی که تولید میشه به اون منابه و معاخذ نگاه میکنه خب و خ... و اصلا من بارها دیدم چون خود من, بله. من تجربه شده بسیاری از این اساتید اصلا نمیخونن خود پایان و اصلا طرف شاید اصلا یعنی رو نوشته قصه حسین کرد شبستری رو نوشته بلده. یه دونه فقط همین نتیجه گیری رو, رو میخونن حالا یا آخرش یه فرضیه به اثبات رسیده و به اضافه‌ی اون و مؤاخذ و چرا منابع گیر دو تا هم میدن بلده. چرا و یهش چرا اونجاش نه چهار و... تا غلط املاعی هم میگیرن و بعد هیچی دیگه تموم میشه میری پی کارش. از اتاق فرمان اشاره میکنن که بحث رو به پایان هستش خیلی دوست داشتم که اینو طرح بحث بکنم در مورد این مسئله که باز هم تق... تقریباً اجداد 90 درصد هایی که تو کل کره خاکی دارن زندگی میکنن یک زمانی یا توی این فلات ایران زندگی می یا اینکه از اینجا عبور کردن اومدن مدتی نزدیک چندین هزار سال زندگی کرد، بعد عبور کردن ادامه این بحث رو به قسمت آینده ما می سپریم از به حضورتون که میریم بخش بیست و هشتون قسمت بیست و اینجا به پایان می رسه و تا آغاز قسمت بیست هشتم، هشتون شنمردگان گرامی رو به خداونده متعال می سه. خدا یارونگتا تندرست باشد